حکایت مشت زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده و حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده شکایت پیش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم مگر به قوت بازو دامن کامی فراچنگارم فزر هنر زایع است تا ننماگند اود بر آتش نهند و مشک بسایند. پدر گفت: ای پسر خیال محال از سر بدر کن و پای قناعت در دامن سلامت کش که بزرگان گفتند دولت نبکوشیدن است. چاره کم جوشیدن است. کس نتواند گرفت دامن دولت به زور. کوشش بی فایده است وسم براب کور. اگر به هر سر مویید صد خرد باشد، خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد. پسر گفت، ای پدر، فواید سفر بسیار است. از نزحت خاطر و جر منافع و دیدن عجایب و شنیدن قرایب و تفرج بلدان، و مجاورت خلان، و تحصیل جا و ادب و مزید مال و مکسب، و معرفت یاران، و تجربت روزگاران. چندان که سالکان طریقت گفتند، تا به دکان و خان در گروی، هرگز خام، آدمی نشوی، بروان در جهان تفرج کن، پیش از آن روز که از جهان بروی، پدر گفته پسر، منافع سفر چنین که گفتی بیشمار است، ولی مسلم پنج تای فراست. نخستین بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت، علامان و کنیزان دارد دلاویز و شاگردان چابوک، هر روز به شهری و هر شب به مقامی و هر دم به تفرجگاهی از نعیم دنیا متمده منعم به کوه و دشت و بیابان قریب نیست هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت بان را که بر مراد جهان نیست دسترس در زاد و بوم خیش غریب است و ناشناخت دوم عالمی که به منطق شیرین و قوت فساحت و مایه بلاغت هر جا که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند وجود مردم دانا مثال ذره است که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند بزرگ زاده نادان به شهر وا ماند که در دیار غریبش به هیچ نستانند. سیم خوبرویی که درون صاحب دلان به مخالطت او میل کند که بزرگان گفتند اندکی جمال به از بسیاری مال و گویند روی زیبا مرهم دلهای خسته است و کلید درهای بسته. لاجرم صحبت او را همه جای قنیمت شناسند و خدمتش را مننت دانند. شاهد آنجا که رود، حرمت و عزت بیند، بر برانند به قهرش پدر و مادر فیش. پر تاووس در او راغ دیدم، گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد، دست ندارندش پیش. چون در پسر موافقی و دلبری بود، اندیشه نیست گر پدر از وی بری بود. او گوهر است، گو صدفش در جهان مباش، در یتیم را همه کس مشتری بود. چهارم خوشابازی که به هنجری داوودی آب از جریان و مرغ از باز دارد. پس به وسیله این فضیلت دل مشتاقان سید کند و به معنی به منادمت او رقبت نمایند و به انواع خدمت کنند. سمعی الا، حسن الاغانی منزل نزی جسل مسانی چه خوش باشد آهنگ نرم حزین به گوش حریفان مست سبو به از روگ زیباست، آواز خوش، که آن هز نفس است و این قوت روح یا کمین پیشوری که به سعی بازو کفافی حاصل کند تا آبروی از بهر نان ریخت نگردد. چنانکه که خردمندان گفتند، گر به قریبی رود از شهر خیش، سختی و مهنت نبرد پین دوز ور به خرابی فتت از مملکت گرسنه خفتت ملک نیم روز. چنین صفتها که بیان کردم، ای فرزند، در سفر موجب جمعیت خاطر است و دائیه تیب عیش، و آنکه از این جمله بی بهره است، به خیال باطل در جهان برود. و دیگر کسش نامونشان نشنود هر گردش گیتی به کین او برخواست به غیر مسلحتش رهبری کند ایام کبوتری که, که دیگر آشیان نخواهد دید قضا همیبردش تا به سوی دانه و دام آنرا که نه حرفت است و نه فضل ناصین نه که اصل زندگانی است در گرد جهان دویدن او را از قایت جهل و قلطبانی است. پسر گفت ای پدر قول حکما را چگونه مخالفت کنم که گفتند رزق اگرچه مقصوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است و بلا اگرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجب. رزق اگر چند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها ورچه کس بی عجل نخواهد مرد تو مرو در دهان اجدرها در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر جیان پنج درف کنم پس مسلحتان است ای پدر که سفر کنم که از این بیش طاقت بینبایی نمی آرم. چون مرد در فتاد ز جای و مقام خیش دیگر چه قم خورد همه آفاق جای اوست. شب هر توانگری به سرایی همی روند. در بیش هر کجا که شب آمد سرای اوست این بگفت و پدر را ودا کرد. و همت خواست و روان شد و با خود همی گفت هنرور چو بختش نباشد بکام به, به جایی رود کش ندانند نا همچنین تا برسید به کنار آبی که سنگ از صلابت او بر سنگ همی آمد و خروش به فرسنگ میرفت رفت سنگن آبی که مرغابی در او ایمن نبودی، کمترین موجا سیا سنگ از کنارش در رو بودی، گروه مردمان را دید، هر یک به قرازهی در معبر نشسته و رخت سفر بسته، جوان را دست عطا بسته بود، زبان سنا برگشود، چندان که زاری کرد، یاری نکردند ملاه بی به خنده برگردید و گفت زر نداری نتوان رفت به زور از دریار زور ده مرده چه باشد زر یک مرده بیار جوان را دل از تقنه ملاه به هم برآمد. خواست که از او انتقام کشد کشتی رفته بود آواز داد و گفت اگر بدین دین جامعه که پوشیده دارم قناعت کنی، دریغ نیست. ملاح تمع کرد و کشتی بازگردانید. بدوزت شرح دیده هوشمند حوش مند. درارت تمع مرق ماهی به چندان که ریش و گریبان به دست جوان افتاد، به خود درکشید و بیمهابا کوفتن گرفت. یارش از کشتی به در آمد تا پشتی کنند، همچنین درشتی دید و پشت بداد. جز این چاره نداشتند که با او به مصالحت گرایند و به اجرت مسامحت نمایند. کل و مدارات صدقه چو پرخاش بینی تحمل بیار که سهلی ببندد در کارزا. بشید این زبانی و لطف و خشی توانی که پیلی به مویی کشی. لطافت کن آنجا که بینی ستیز، نبرد غژ نرم را تیغ تیز. به عذر مازی در قدمش فتادند و بوسی چند به نفاق بر سر و چشمش دادند. پس به کشتی درآوردند و روان شدند تا برسیدند به ستونی از عمارت یونان در آب ایستاده. ملاح گفت کشتی را خلل هست. یکی از شما که تر است باید که بدین ستون برود و خطام کشتی بگیرد تا امارت کنید. جوان به قرور دلاوری که در سر داشت از خسم دلازرد نیندی و قول حکما که گفتند هر را رنجی به دل رسانی دی، اگر در عقب آن صد راحت به رسانی، از پاداش یک رنجش ایمن مباش که پیکان از جراحت به درآید. و آزار در دل بماند، چه خوش گفت بکتاش، با خیل تاش، چو دشمن خراشیدی، ایمن مباش، مشو ایمن که تنگ دل گردی، چو ز دستت دلی به تنگ آید. سنگ بر باره حصار مزن، که بود کز حصار سنگ آید، چندان که مغود کشتی به ساعد برپیچید و بالای ستون رفت، ملا زمام از کفش در و و کشتی براند، بیچاره متحیر بماند، روزی دو بلا و مهنت کشید و سختی دید، سیوم خوابش گریوان گرفت و به آب انداخت، بعد شبان روزی دگر بر کنار افتاد، از حیاتش رمغی بنده، برگ درختان خوردن گرفت و بیخ گیاهان براوردن تا اندکی قوت یافت. سر در بیابان نهاد و همی رفت تا تشنب و بیتاقت به سر چاهی رسید. قومی او گرد آمده و شربتی آب به پشیزی همی آشا جوان را پشیزی نبود، طلب کرد و بیچارگی نموند، رحمت نیاوردند، دست تعدی دراز کرد، میسر نشد، به ضرورت تنی چند را فرو کوفت. مردان غلبه کردند و بیمها بزدند و مجروح شد، پشش چو پر شد بزند پیر را با همه تندی و صلابت که اوست. مورچگان را چبود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست به حکم ضرورت در پی کاروانی افتاد و برفت شبانگه برسیدند به مقامی که از دزدان پر خطر بود کاروانیان را دید لرزه بر افتاده و دل بر هلاک نهاده گفت اندیشه مدارید که یکی منم در این میان که به تنها پنجاه مرد را جواب دهم و دیگر جوانان هم یاری کنند. این بگفت و مردم کاروان را به لاف او دل قوی و به صحبتش شادمانی کردند و به زاد و آبش دستگیری واجب دانستند. جوان را آتش معده بالا گرفته بود، و انان طاقت از دست رفته، لقمهی چند از سر اشتها تناول کرد و دمی چند آب در سرش آشامید تا دیو درونش بیارمید و بخفت پیرمردی جهان دیده در آن میان بود گفت ای یاران من از این بدرقه شما اندیشناکم نه چندان که از دزدان چنان که حکایت کنند که عربی را درمی چند گرد آمده بود و به شب از تشویش لوریان در خانه تنها خوابش نمی برد. یکی را از دوستان پیش خود آورد تا وحشت تنهایی به دیدار او منصرف کند و شبی چند در صحبت او بود. چندان که بر درمهاش، اطلاع یافت، ببرد و بخورد و سفر کرد، بامدادان دیدند عرب را گریان و اریان، گفتند حال چیست، مگر آن درمهای تو را دوست برد، گفت لا والا، بدرقه برد، هرگز زیمن مار ننشستم که بدانستم اون چه خسلت اوست زخم دندان دشمنی بتر است، که نماید به چشم مردم، دوست، چه دانید اگر این هم از جمله دزدان باشد که به ایاری در میان ما تعبیه شده است، تا به وقت فرصت یاران را خبر کند. مسلحتان بینم که مرو را خفته بمانیم و برانیم. جوانان را تدبیر پیر استوار آمد و محابتی از موش زن در دل گرفتند و رخت برداشتند و جوان را خفته بگذاشتند آنگه خبر یافت که آفتابش در کیچ سربراور و کاروان رفته دید بیچاره بسی بگردید و راه بجایی نبرد تشنه و بینوا روی بر خاک و دل بر هلاکه نهاده، همی گفت من زایو حد سنی و زمال ایس مال القریب سوال قریب انیس. درشتی کند با قریبان کسی که نابوده باشد به قربت بسی. مسکین در این سخن بود که پادشاه پسری به سید از لشگریان دور افتاده بود. بالای سرشی ایستاده همی شنید. و در آتش نگه می کرد. صورت ظاهرش پاکیزه و سیرت حالش پریشان. پرسید از کجایی و بدین دین جایه شون افتادی. برخی از آنچه بر سر او رفته بود، اعادت کرد. ملک زاده را بر حال تباه او رحمت آمد. خلعت و نعمت داد و معتمدی با وی فرستاد، تا به شهر خیش آمد. پدر به دیدار او شادمانی کرد و بر سلامت حالش شکر گفت. شبانگه زن چه بر سر او گذشته بود، از حالت کشتی و جور ملاح و روستایان بر سر چاه و قدر کاربانیان، با پدر می گفت. پدر گفت، ای پسر، نگفتم ات هنگام رفتن که توهی دستان را دست دلیری بسته است و پنجه شیری شکسته؟ چه خوش گفتان توهی دست سره شور، جوی زر بهتر از پنجاه من زور. پسر گفت، ای پدر، هر آینه تا رنج نبری، گنج بر نداری، و تا جان در خطر ننهی، بر دشمن زفر نیابی و تا دان پریشان نکنی خرمن بر نگیری نبینی به اندک رنجی که بردم چه تحصیل راحت کردم و بهنیشی که خوردم چه ماهی اصل آوردم گرچه بیرون ز رزق نتوان در طلب کاهلی نشاید کرد قباس اگر اندیش کند کامنه هنگ هرگز نکند در گران مایه به چنگ، آسیا سنگ زیرین متحرک نیست، لاجرم تحمل بار گران همی کند، چه خورد شیر شرز در بن قار، باز افتاده را چه بود، تا تو در خانه سید خواهی کرد، دست و پایت چو انکبوت بود، پدر گفت ای پسر، تو را در این نوبت فلک یاوری کرد و اقبال رهبری که صاحب دولتی در تو رسید و بر تو ببخشاگید و کسر حالت را به تفقدی جبر کرد و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد، زنهار تا بدین تمه دگر بار گرد ولع نگردی، سیاد نه هر بار شگالی ببرد، افتد که یکی روز پلنگش بخورد، چنان که یکی را از ملوک پارس نگینی گران گرانمایه بر انگشتری بود، باری به حکم تفرج با تنی چند خاصان به مسلای شیراز برون رفت فرمود تا انگشتری را بر گنبد کبود نصب کردند تا هر که تیر از حلقه انگشتری بگذراند خاتم او را باشد. اتفاقا چهارصد ست حکمنداز که در خدمت او بودند جمله خطا کردند مگر کودکی بر بام رباتی که به بازیچه تیر از هر طرفی میانداخت. باد سبا تیر او را به حلقه انگشتری در بگزرانی و خلعت و نعمت یافت و خاتم به وی ارزانی داشتند. پسر تیر و کمان را بسوخت. گفتند چرا کردی؟ گفت تا رونق نخستین بر جای ماند. گه بود که از حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری، گاه باشد که کودکی ناتان به غلط بر هدف زند تیری.